گ های جاویدان، برنامه شماره 146، you, Javi Dunn. کار آیدت به گل طبقیم از گلستان من ببربردیم گل همین پنج روز و شش باشد به گلستان همیشه خوش باشد که امشب از او سخن می گوییم خاقانی شروانی از فرایندگان به نام قرن ششم هجری قمری است که پدر بدیل نامی و بعدها به افضل دین مشهور گردید و به خاقانی متخلص و معروف. که به سال 5 2020 قمری دیده به دنیا گشود، پرزند پدری درودگر موسوم به علی است و مادری ایسوی نستوری که تازه به دین اسلام مشق شده بود و شغلش تبااخی. ولی تربیت و تعریمش به مراقبت و تحت نظر مستقیم عمویش کافی و دیین مدن عثمان که از اعتباع دانا و به آن زمان بود انجام یافت. و تا س ۲ سالگی، که ام فاضلش به درود حیات گفت به تحصیل مشغول و به حقایقی متخلص بود. افضل الدین بدیل پس از مرگ ام در سلک شاگردان عبالالای گنجوی در آمد و چون به دربار خاقان اکبر منوچهر شربانشاه به معرفی استاد راه یافت با اجازه او به خاقانی متخلص گردید و به خاقانی شربانی مشهور خاقانی مردی دیندار بود. و اعتقادی محکم به نبانی مذهبی داشت، چرا که دوبار به زیارت کهبه مشرف شد و در سفر اولین قصیده شیوا در متخ خانه خدا سرود که خوافه مکه به آب زر نوشتند. آقانی شروانی نسبت به ایران کوهن علائق و تصویبی وافر داشت. هن ای دل ابرد بین از دیده نظر کن هن ایوان مدائن را او آینه ابرد دن. یک ره ذره دجله منزل به مدائن کن و از دید دوم دجله برخاک مدائن ران. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو پند سر دندانه بشنو زبن دندان گوید که تو از خاکی گوید که تو از خاکی ما خاک توی مکنون گامی دوسه برمانه عشقی دوسه هم پفشون از نوهی جغدالحق ما این به درد سر از دید گلابی کن درد سر ما بینشن <تصفيق> گه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستم تا خود چه رست خسلان. از خون دل طفلان صار خواب روخامی زد این ظال سپیداب رو وی مام سیقدستان از خون دل طفلان صار خواب روخامی زد این ظال سپیداب رو وی مام سیقدستان و به زرین برباز شده یک سر با حاق شده یک سر که بسه هم یکی چند از قصیبه است که خاقانی پس از دیدن ایوان مدائن که یکی از آثار عظمت ایران باستان و تجلی تمدن زمان ساسانیان دل اخص دوران انوشی روان دادگرست روده. قصیبه شیوا، ابرتنگید که هر خاننده و مستمعی را سخت متاثر می تازد. و بیانش تازه و حاکی از دفت و دانش و حکمت امین و با آن که این سخنسرا در زمانی میزیسته که سخنوران بزرگ و نامی سخن و معنا را رفته و هر چه باید گفت گفته بودند اون شیوه های نو و مضامین تازه و لطیف در شیرش آورده است. منصفان استاد دانندم که از معنا و لفت شیوه تازه نرسم باستان آورده هم غزل خاغانی با آنکه قرن ششم آغاز غزل فراییست با لطف و جالب هست تابدان حد که سخنورانی چون مولانا و عدی و حافظ از عبیاتش تزمیم و یا از غزل های شیوایش استقبال نمیدن خاغانی به تمام مظاهر زیبای طبیعه خاصه صبح و صبح دم علاقه فرابان دارد و چون آرشی که هرانچه زیبایی نموداری از جمال اکمل ازلی بداند، با بیانی که از اعماق دل برخواسته، خوبی و زیبایی را ستوده و از این زوغ و جذبه ارفانی الهام گرفته آمد نفس صبح. آمد نفس صبح و سلامت نرسانید. اونکه تو نیافت دارد، پیامت دارد. یا تو بدم صبح سلامی نسته پردی؟ یا صبح دم از جشک سلامت نرسم. من نامه نوشتم. من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم. افزود. افزود که بختم بیه بامت نرسم. با باد سپردم دلو جان تا بیتار این حردان ندانم که کدامت از نردن. امریست که چون خاک زگر تشنه ایشم. امریست که چون خاک زگر تشنه ایشم. ایام به من جرعه جامعه نردن. خاوانی. خاوانی از این تاله کام چه جویی؟ کو چاشنی کام it oh ll lol از آشق جانباز نخواهند آنان که من بی پر آنان که من بی پر و پروانه عشقند جد در خرم جانان پرواز نخواهم بی عشق زی چیزی نگو شاید بی عشق زی چیزی نگو شاید. بی فصل گل از بل, بل آواز نخواهند fixe con as polpol هر خوشکتر که داشتم از غم بسوختم هر خوشکتر که داشتم از غم بسوختم هر بال و I've done the tools. فروش فراجد مرا زده عشقم بسوختم به غم عشقم بسوختم به غم Thank <laughs> شو که از غم عزیزم را هر از غم به سوخته هر بالو پر کداشته از دم به سوخته هر بالو پر کداشته که <تصفيق> داوشا <تصفيق> جاویدان از گلزار بی همتهای ایران گلی که هرگز نمیرد شب خوش آنچه به سمرسی برنامه شماری 146 گلهای جاویدان بود که با همکاری آقایان عبادی، معروفی، کسایی، حبیبالله بدیعی، جلیل شهناز و گلپایگانی تنظیم یافته گفتار به قلم آقای زیاهدین سجادی